حکایت فقیره درویشی حامله بود مدت حمل به سر آورده و مر این درویش را همه عمر فرزند نیامده بود گفت اگر خدای عزوجل مرا پسری دهد جز این خرقه که پوشیده دارم هرچه ملک من است ایثار درویشان کنم اتفاقا پسر آورد و سفره درویشان به موجب به شرط بنهاد پس از چند سالی که از سفر شام باز آمدم به محلت آن دوست برگذشتم و از چگونگی حالش خبر پرسیدم گفتند به زندان شهن در است سبب پرسیدم کسی گفت پسرش خمر خورده است و عربته کرده و خون کسی ریخته و خود از میان گریخته پدر را به علت او سلسله در نای است و بند گران برپای گفتم این بلا را به حاجت از خدا خواسته است زنان بارداری مرد هوشیار اگر وقت ولادت مار زایند از آن بهتر به نزدیک خردمند که فرزندان ناهموار هموار زاین.